استو پسر داره حال خوبه. ییتم امام گفتن می خونه کسی کسی داخل شه. باز برش بو یه حال خویی شاداب پشما باشه نه؟ بودو خونه خوشحال کولاد و یه خاطر پشما مسلوب شvem. باز یکی کار بده که بره تو توکیداری کرده اونجا. یه کسی برش بو که تو بس بگیر می کامپیوتره ما می که ما میکنه میره چیکونو شتابو. ما تو بارتو. یه که نبوی که جوارو کو. یه کسرا اسکارو صاحبتون با خدا خانه استاد شو ببین کسی اینجا نبیه یک کسی در نماینده و سفیر رو خود تعین کن کدوبه رو در فرانه خوانه برونه ای خو نظام همین نظام با قومت که شما میکم. نظام چی مانه نظام خدمی افراد متشکل است حال شما باید داشته باشین مثلا امریکایی مثلا اگه فلان با فرانی آشپز مجایدین است آشپزش من دریور سکیر نکنید آشپز رو میگذارن اگر کسی باید که چه بویک ولا ماق وقت تایپستی میکنیم ابو لعانی و ولانی تایپینگ تا ایر میگذران نشه نمیخشرش میگونه اگر به گفتی استاد اگر اکشب وا تو ات ورشوی گره پاکلکشه بو شبرت اگر اکبر سر تو خبرشون خانته بمبارد میکنن لزابور در ورتگاه قندار خانه های مردم قریه های مردم ویران کردن به این که شما شب در اینجا مجاهدین شما نگاه میکنه اتا با با اتا در حال کونه شاید بوید شاید فقط ای چی براشه که بعضی با کس هم کاری کنه بعضی کسی که ای خود با خدا باید میکنه که ای خود جنگ یک چیز منظم است بعضی مردم سر جنگ مقتدرش وقت نالو بین در جنوب در افغانستان جنگ است یک نظام است نه این نظامی پختی او هلمندو قندار که جنگ است نه اینمی کل امی ای خط اول جنگ است نه خط آخر جنگ دکاسر صفا از واشنگتن اینمی خطی که میگذره امت می آتا با واشنگتن میل نمیخواد دینمی خط دمی دی بای پلان امی خروجان میگن امی خوار کسد چی بای صاحب امی ریسمان امی خ... ریسمان کسد هر کسی که در این ریسمان می باشه. مثلا خدمت ریسمان رو میکنه در قدر جنگ شریک مثلا در پکتیا جنگس جنگ است در تلویزیون چی میکنه شده؟ او اعلان اعلال بارش نی؟ برش محلیل سیاسی رو میخوان که تحلیل کو خواننده رو میگه برش بخان بز خاندار تن میکرد تو جوانارو به چیز مصروف مثلا نگاه کوي به فساد گپات مازه. مردم مردما به خاطر که مطلقا در یک دایرکتوری قرار وبتن بهش مؤسسات گپاره دور کدن که خیلی معاشره موشتن که د عمر پشت چل پدارشه مقسمه نشه نه یو خدای دی. خو oh اله بمیس اتا ګفته چې خامې له ونی اله بمیس کې وخت کې جنگ نه متل چې دایره دایره از کار کړم در پولیس کې تامین تربیه بشپوره یکی اقتصادي بشپوره یو جنگه شام بر آخر کل نظام کس مختص میشه به نظام؟ نظام امریکایی نظامی کوفری است که مطلق انتخاب کنی جنگ تخریم کن و فلان در آبوان است. یک کس برایش خانی خود کرامت است. یک کس برایش پروپریتی بايد. نمای ممبرت بین دو نفر ارتباط نصب قائمی کردم. یکی خیلی قذی خطرناک است. این ما باید باشیم که اسلام وقتی که اسلام زود است اسلام تنیست که ما به دلخودو تفسیر کنیم بر مردم اسلام قرآن بر ما یه رس بیبنن حاتی بن ایبلتایک، سوابی رسول صلی الله علیه و سلم صرف با یک خط، یک خط. بکورایش رای کرده بود. اما رون خطا چی گفت. برش گفت لقد نافقه. یفی منافق شد به خود را بکشند. با دل ما نیز مانعش کرد. ما نگاه کشید و برش منافق میگی. کسی مي مي کرده. ده. که بعد اشتراک داده بود جنگ بدربود. برش ول خطا میگه منافق. مگه منافق قصیر بکشند میگه. سوابق کسی بهش دل فراسانه میگه تو آدمی نکردی. سوابق میگه بکشید اینا. باید سالها سال آمرش میذارشند ام ام باشه بازی مثلاً ما چی است که امروز کشور خب یا در اخبار رو میشه مثلاً مجاودین کشته میشن مگه سید آشادگار نبود؟ از کشتن کشته میشن مگه سینه و جوان خب خوب آلیس سوال ولی میت بی آل دیگه یخویا شریک شدن به یه جرم و جنایت نه؟ کلی نمی جرم و جنایت دک شریک شدن مثلا میل با اخبار به تلویزیون با, با جزیره‌ی گپا یخو جنگ منظم است میگیرد اخبار وی در با شمول تلویزیون جزیره‌ی گپا را شما مشاهده کنید. ها مگی نمی‌فساده است. ها م همیشه میگیستن که راینارم را منفور بیش مردم متنفر بوده دنی. خب آل سوال باید پر آلی جای خاد گرفت. باور کن اگر غیر از دین اسلام کدام دین دیگه می‌بود؟ آل ادم اول از بند افتاد بود. یک قدم توتک سر اسلام صورت سردمی میگردم. چونی این دین دین الله عز و جل از زوجالس. هیچ چیز برش نمیرسه کدام چیز هم پس همون تازه گیش پس میومانه. تازه ازش میشه که. هیچ چیز نمیکشه کسی جمرات الله قاوم دیگه را قید نبوده که مثلا بشار تنظیمای سابق خیلی بزرگ، تنظیمای خیلی عمیق بودن در مثل فلان و فلان مثلا در ایران و در مصریه. پس اونا تنظیم بسط تنظیم گمرش شد. الله دگه جان را پیدا کرد. قوم دکه را پیدا کرد الله اگر عقیلیا گمرش شد الله قوم دکه را پیدا میکنه. اگر نه ما الله قوم دکه را پیدا میکنه خواست بیای ما مسئول نیم بهش الله عزوج. ما مورد سوال قرار میگیم. و الله قسم بدین الله از ایجازی دعای و مسلمان اگه دیدن کوشته میشن کوشته رو خندان دی وفات میکنه صبور و میکنه که او بام کوشته شد. انسان شاء الله خواص وفات میکنه کوشته میشه. صرف منظرش فرق میکنه که با راکت با توبه کی با متلک هم تو وفات میکنه. خب آیا آی اماده نزد الله زلت و صد قضا اداو کردن. ما چی اداو کردن مسو اداو کردن. مادر پوری کو فقط انگش مادر پوری مسلمان قرار بده. پی اس ما برات تو اداو تو. اینکه ما بوگیم منگویم جهاد دامه داره.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 Załatwiał, i nie na tajemnicz w Surowacie, i nie na ulek, i nie na ulek, i nie na ulek, i nie na ulek, i nie na ulek, i nie i nie na ulek, i nie na ulek, i nie na ulek, i nie na ulek, i nie na ulek, i nie na ulek, i nie na ulek, i nie wiem, czy to jest w استخبارات صبول الله في جينگ امريكا وخو جينگ امريكا ينجي كاسي وجينگ امريكا جيجا كرده عمرده ما نجي دفاع دفاع طرف مقابل امريكا بول ميدن خب ما طرف مقابل بعض ما احمق من حماري ما آ خب اصل ما می باشیم که که ای جنگی دامادر در هیچ شک نیست که مجاهدین که هر قدر تومث سرشان زیاد میشه دولت به این میکنه که اینا اولیای حقیقی الله عزوجل هستند که مورد ابتلا قرار میگیرن مجاهد که شما فلان به شما لطقه صحبت میکن از اسلام میگه با شهید یک شب مجاهد خونی ما خواب شوا یک سال دیگه مورخه اون برشه که کل خونی و معاشره شد عالم را گرفت عالم را برد زباله متلاخط شده دولت گرفتنه همین مایی که صحبت می دیگه خو بگذار کسای دیگه که مثلا اینه ات و وجودش قدر بر مردم چیست؟ قدر برادر اما بایی باشین برادرها کی کل فخر است سر بوش کسی اک رفت هم نایمانه که بکشش خود رهبرای رهورای مجایدین کسی از وست ها ملون